هل محلا جلد یازده اون چاپی که یازده جلیه سرفیل نظر بیست چون بیست به چار چون با اما خبر روزه فساقتون لنهو منطریق ولید ابن جمعی به هوا حال کن حالا این از اینکه که میگه منطریق ولید ابن جمعی به حال کن معناش اینه که این روایت اشکازیگی نداره فقط ولید ابن جمعی جمع. با این نفعه روا اخبار هم ها این ولید ابن جمعی هنه بعد میگه آه الله خواهی و سراحی معلوم دروخه. خب من خب شما به شوازده خود روزم این دروخه. سند معتبره. همه به اخبار داره و این نبوده. بعدم اشکال در سنده به بلیدرد جمعه ای کرده. چهار تا اصده های اهل سنت از این حقیق میکنن من خود مسلم. استاد مسلم. خود مسلم از این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 خب حالا بیمونه بکنه آقا شما یعنی داریم که این خبر محضوبه اگر کسی گفت نه آقا اخبار صحیح وارد شده ما قبول داره و هر این کار رو خواهد مربونه این چه مشکل داره وقتی خودتون علم شعنتون این عبارت رو دارن همون عبارت حدیث دواس و صحیحه رو که در مقابل پیغمبر ایستاد الان تو وقت ما بزشته وارد شهرش نمیشین اگر کس یعنی اختلاف ما با اونها در حقیقت اختلاف موضوعی میشه شما میگید من این اخبار قبول ندام اشکال نکنه اگه کسی لعن اونها رو کرد این دیگه کافره وقتی خود شما این نکترم من از کردم چند بار دیگه بازم اینجا تکرار میکنم و واقعا اعتقاده من جزء معجزات ها این جزء کرام ماست ما شیعه با سند سن این مطلبه نداریم خیلی <تص> هنچی در کتب ما با سند صحیح مطلب نداره اما سنی ها با سند صحیح دارن یا واقعا بنذارم جو تو کرامات هستند <تصفيق> اهل سنت با سند صحیح دارن اخبار هم دارن باعث. این که با نه اینکه به عنوان منافقین چون بانوان عنوان منافقین در کتاب صحیح مسلم چیز داره که بعد از قصه این که مراد معلومه از تو مسلم نمیگه هم ما لیله الاخره تعلیم منافقی اما با سند صحیح با عرف دارن که این ها عراض و قفل نداریم و ما نداریم ما الان در طرق شیعه یکی هدیعت و که مال نوسیری های به اصطلاح حسین نحمدان اسم نو نقرم برده و مرسرم هست و مفضل نحمدان یکی هم خصال محوم شیف صدو و اکسنده به نظر آخرش هم به اهل سنت منتقیب میشه اونجا جای دیگه نداریم مثل سیلی از اول عقده و این دوازده نفری که میخواستن رسول های ترور بکنن نداریم. اما در کتب اهل سنت با سند صحیح ادهی از اخبار داریم یعنی اینقدر این سنده صحیحه که نقطه ضعفش استاد مسلمه زعفه او به ولید ابن جمعه که استاد مسلمه بگیم این بقیه سنده چیه بزرگ اون نقطه زعفی که این ها دست روش خودشته ولید البته الان اهل سنت کلی نهاد که هست کردن معصوم یکی از دوستان راجع به من خیلی کتاب‌ها رو دیده بود، ازش پرسیدم گفت هر کی در هر پیدا نکرد. منم شدم یک احتمال تو مخصوصات پیدا بشه. فعلا در مطبوعات کلا وجود نداره. تا قرن پنجم وجود داشته که ابن حزن نام میبره دیگه بعد از اون کلن یعنی اینم به نظر من جزو اجازات الهی که اهل سنت اخبار صحیحه دنجاز دارن و شیعه هم نداره اخبار صحیح خب این میشوه به خود اونها گفت که شما به جای اینکه به ما ها اشکال بگی، به خودتون به علمای خودتون اشکال بگی نه به ما. خب وقتی علماتون به طریق سعی نقد کردن که اراده قسن الوین است، ها ممکن است در عالم وجود در نظام متکامل وجود چیزی خریسته از این باشه که اراده قسن ندید، ملعون تر و خریسته تر از این باشه. حالا شما میگید ما قرض داریم به بطلان، خیلی ما میگید چون اخبار شماست؟ ائمه ما هم که نقد نکردن. خود شما ها کردین که سر بوده ما میتونیم این رو قبول بکنیم اقل در این حد هست که شما نگه نگه چرا لعن کردین استحباق این کافر مشرک استحباق فتف هم ندارد نگه استحباق پو.